جلوهو می فرماید که وامنن الناس من یتخیزو من دون الله اندادن یحبونه هم که حب الله وامنن بعضی از مردمان من کسان هستند که یتخیزو میگیرند من دون الله اندادن بغیر از خداون شریکای دیگه یحبونه هم اینمی شریکا را داشته باشند که الله مثل محبت یعنی خدا باری یعنی شریکای خود دوست می داشته مثل که خدا را باید دوست داشته باشن والذین الذین و کسانی که ایمان دارن اشد حب بالله و ها محبت بسیار قوی با ذات الله جل جلاله دارن اینجا مانای از این آیت شریف و یا درک که از یایت شریفی قسم میشه که والذين آمن و الذين امنوا وشد حب لله یعنی که انسان مسلمان است این محبت بسیار قوی با خداوند مطال جل جلاله می داشته باشه و باید داشته باشه الان یک سوال بر پیدا میشه که اگر خودت یک کسی را دوست داری یک انسان پیش ازی که در خداوند متعال صحبت بکنیم می در یک انسان یک کسی را دوست داری وقتی کسی را دوست داری بابرازی یک روز و حالا برادر من بسیار دوست دارم او که که چخصی مرا دوست داری؟ آمدی در خیرخانه من خبر شدم فلانی دوستم تایرجان آمده در خلای نجاره خانه فلانی هم سایتان حالا ما آمده بودی مجلس داشتی در مجلست آروسی کلگیر خبر کرده بودی مرا خبر نکرده بودی. وقتی که قصه یاد میشه در اگه آنجای در باری کلگی کل گپ زده بودی اما در باری ما گپ نزده بودی وقتی که مهمانی داشتی در مهمانی کلگی کل رو خبر کرده بودی ما رو خبر نکرده بودی وقتی که به این شکل خانی از او رفتی در مجلس که تفلانی از این خاطر برازو نفرمایی که والا نهی برادر تو امی گپی را که میزنی که ما تو رو دوست دارم امی دوستی تو در شک است و امیر راست دروغ اینه وقتی که این انسان به این شکل چه میکنه این میقسمه یکی خداوند مطال جل جلاله در روز قیامت از پیش انسان سوال میکنه که تو آیات قرآن خاندی که والذین آمنوا و, و حبلا لله کسانی که مؤمن هستند یا محبت بسیار قوی با خداوند مطال جل جلاله دارن تو دوستی دا ثابت کو تو دوستت ثابت کو تو چه قدر واقعا به امرای من دوستی داشتی به امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول مبا تو چه قدر دوستی داشتی ایراد باید انسان فکر بکنه و در روز قیامت به خداوند ثابت بکنه که چه قسم دوستی خدا انسان میتونه با یک کس به خداوند جل جلو جلو ثابت بکنه یک صحابی مبارک میگه انگیش بسیار کشته بود رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که چرا تو چرید تغییر کرده میگه گفت که رسول خدا من تشویش دارم گفت چی تشویش داری؟ گفت تشویش میهی که در روز قیامت و وقتی که مسلمان ها به جنت میرن من درست صحابی تو از تم به تو ایمان دارم و از خداوند امید دارم که من را در جنت ببره. ولی ما تشویش دهی است که تو پیغمبر خداستی و محبوب خداوندستی و پیغمبر ها عزت زیاد دارن من فکر که شاید من هم در جنت برم لاکن تو در جنتی باشی که مقامش بلندتر است و من را او جنت کس نمانه و من در جنت دیگه باشم والدات جای باشم که تو را دیدن نتانم از این خاطر امو جنت بر من ناپسند است آن کس که تو را شناخت جان را چی کند یکی از شاعران میگه عمر خیام می خدای آن کس که تو را شناخت جان را چی کند فرزند و احیال و خانمان را چی کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانش می‌کنی باز تو جهان برش میبخشی هم دنیا را برش نمی‌بخشی هم آخرت هست. دیوانه تو حد دو جهان را چی کند من دو جهان چی کنم از این خاطر ای صحاب که اگر یا رسول خدا تو تو جنت نباشی من متأسف از اون باغ او جنت چی کنم جنتی که روجه ما چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم ان پس پیغمبر برش که جگر خون نباش المر اومع من احب هر کس در روز آخرت امرای کسی میباشه که او دوست داره اگر رسول خدا را دوست داری با رسول خدا میباشی اگر دوستای خدا رو دوست داری در جنت با دوستای خدا میباشی در روز آخرت با امراه زمان میباشی اوتاراشه که انسان به اساس محبتی که با غیر خدا داره در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و بگه که برادران زیر پرچمم تو که ما دوستی نداشتی که دشمن ما دوستی داشتی که مخالفین ما دوستی داشتی مجلس تو مجلس نبود که ما به او خوشحال باشم مجلس بوده که او گناه بوده. و بود اونجا ملائکه حاضر مجلس فرار میکنن از این خاطر انسان خدای نخواستن در روز قیامت امرای کسی باشه که او کس مستحق جنت خدا نیست حالا سوال پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه صحابه کرام آنقدر رسول الله صلی الله علیه و سلام ادس داشتن که میگه یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلام از مسجد در آمد دید که یک صحابی براش در راه ایستاده است میگه پیغمبر بپرس آموزش گفت که چی میگه در راه ایستاده است میگه گفت که یا رسول خدا من در راه تیر میشدم صدای در آدمی میشنیدم که گفتی استاد شو به ما فکر کردم که البته مر میگه استاد شو من یه استاد هستم تا که خودت بیای او تو نشه که به احترام میشه شاید پیغمبر سلام کسی دیگه گفته که استاد شو این از این بشه دیوارم صدایش شدیده استاد است تا در حرکت کردن من به احترامی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشم. آن یک سوال پیدا میشه که خب ما چه قسم ثابت بکنیم که ما خداوند دوست داریم یا محبت خداوند چه قسم ثابت میشه محبت خداوند اول در اختیار نام اولادها معلوم میشه که این نفر خدا را دوست داره و این نفر خدا را دوست نداره این نفر با خدا دوستی داره و این نفر خدا را دوست نداره چه قسم ببینین خانه یک نفر بچه میشه یا دختر میشه این نفر که خانمش بچه شد یا دختر شد اگر خدا را دوست داره قرآن شریف رو ببیده پس سر قرآن شریف 99 نام خداوند متعال جل جلاله جل از این 99 نام خداوند متعال جل جلاله جل یک یذیر اختیار کو پیشروش کلمه عبد یا بنده ربون عبد الله عبد الرحمن عبد الرحیم عبد المننان عبد ملک عبد القدوس این نام ها است بچه تا یکی از این نام ها رو تو محبت با خدا داری یک نفر آن را دوست دارن ابراهیم، موسی، عیسی اسحاق، یعقوب ببین نام خداوند مطالب شده، شل... نام پیغمبر یک نام از این پیغمبر را اختیار میکنن و مطابق از این نام ها، نام اولاد خدا میبنن دوستی و پیرامبر است. پیرامبر صلی الله علیه و دوست داره. از و همه هم چندین نام داره که در قرآن شریف آمده مزمل، مدرس، محمد، مبشر. یکی از نام ها را اختیار اختر برای اولادت. صحابی پیرامبر دوست داری. یکی از نام های صحابی یا آل بیت پیرامبر صلی الله علیه و ابو بکر، رمر، حالی، حز... حسن، حسین، دختر از فاطمه، دختر از اسماعه، دختر از سمیه. ناموه چیلی بگی؟ ناموهی که صحابه پیغمبر است. یک نفر خانه شولاد شد. نه نام خدا خوشش آمد. نه نام پیغمبر خدا خوشش آمد. نه نام صحابه کرام خوشش آمد. نام کی خوشش آمد؟ نام کس خوشش آمد که؟ یا اوندور به خزانه و خدا چی میمونه نام یک اوندور سر اولاد خود میمونه پس این از چی ماله میشه چرا اینقدر نامهای صحابی پیغمبرن نامهای پیغمبرن این نامایی که مشروع است یا یکیش خوشت نامد من به بقوم فهو منهم این حدیث شریف بسیار خطرناک است برای کسی که با یک کسی مشابهت میکنه این از جمله ازوس اگر با اوندورش به حق میکنه این از جمله اون دوست. اگر با آمریکایی مشابهت میکنه، از جمله آمریکایی است. اگر با روسی مشابهت میکنه، از جمله روسی است. اگر با صحابی پیغمبر و دوسر خدا مشابهت میکنه، میگه تشابه او، اینلم تاکون مثل همو. شما مشابه بسازین خدا. با دوسر خدا، با پیغمبرای خدا، اینلم تاکون مثل همو. اگر شما مثل زنوار نبودین، فین فین تشابه بالکرامی هوال کرم اینمی که خودم مشابهت میدی با دوستای خداوند اینمی کرامت عزت انسان را ثابت میکنه آل چه قسم آل تو خودم مشابهت دادی به امرای یک چرا؟ به خاطر بخاطر ازی که اصل ازی میگرده بچی؟ چرا من تشبهه به قوم فهو و من هم یک نفر خودم تشبیه قوم میکن از جملی از چرا حساب میشه؟ خیلی است که من لباس خود مثل اون دووار ساختم خیلی نه میگه خاطر چی؟ لباس مثل اون دو ساختی؟ نامتا مثل اون دو ماندی؟ تا مثل اون دووار ساختی؟ تو خودم شبیه با اون ساختی؟ چرا؟ بخاطر ازی از که قلبن محبت دمرای از زیاد شده بود وقتی که محبتت قلماً به همراهی زیاد شد بنان تو کوشش می‌کنی مثل ازو برای خدا بسازی اگه تو پیغمبر دوست می‌داشتی کوشش می‌کردی نامت تا لباست تا نشاست و برخاست تا گفتن تا کلش مثل پیغمبر وارد بسازی اگه تو پیغمبره خوش نداری، صحابه را خوش نداشی. از ازی خاطر چی کردی؟ خدا مشابهی با یک کس دیگه ساخته. چرا؟ به خاطر اینکه محبتت نسبت خدا و پیغمبرای خدا و صحابه کرام و آل بیت پیغمبر صل نسبت به اون محبتت با زیاد بود؟ نسبت به اون محبتت با دشمنای خدا زیادتر بود. این واسه کی دشمن خدا؟ خود از مشرکین برائت داره. و تو اون دی که مشرک هست خوب میبینی بچشمات که بودا پرستش میکنه تو میگی خدا خدا میگه من ازو بیزارم عیسا کوچیکم چی گفتی گوزید در دور تفسیر بله ماوییسا گفت که برائت من الله و رسوله برائت از بیزاری خدا و پیغمبر کی است از مشرکین وقتی که اونا از خداوند از مشکین مشرکین بیزار هستن تو خی وقت که او رو بیزار چرا خداوند و پیغمبرش از مشرکین بیزار هستن چون دشمن خدا و پیغمبر است بس تو میخیزی نامتا نام اولادتا لباستا چیریتا مثل کی میسازی مثل دشمن خدا پس تو دوستی و محبتت با چی شد با دشمن این حال از, لبا... از نام محبت معلوم میشه کی رو دوست داری محبت دا کی رو داری نامتا مثل زوار میمانی از لباس معلوم میشه کی رو دوست داری لباست دا مثل زوار میسازی یک زن است بیب فاطمہ واره میخوای بیبی مثل بیبیها واره باشه بیبی فاطمہ واره باشه بیبی عایشه واره باشه خیلی ازش چادرش داره مثل چادر داری بیبی عایشه می باشه چهار مثل چادر بی بیبی فاطمہ می باشه چهار مثل چادر داری بیبی خدیجه می باشه چهار مثل چادر داری بیبی مريم می باشه اما اگر نیک چهار داره بیبی ریوز می پردا و سرلوچ با چند قلم آرایش در مقابل مردای نامحرم استاد میشن خدا مثل اوندوی که در سودیال و در فلم دیدم مثل زور خدا عیار میسازن بازو نگیدی من محبت با خدا و با پیغمبر خدا و در بیبیا خدا من مره عشر یا من دکچه کرم. من مثل بیبی بارشم ای بیبی دکچه نکرده ای ده کتاب دکچه و گفهانی سیر مردم کشیدن <تصفح> آره دکچه بیبی بیبی از کجا کرد دکچه؟ تو در کشور عربی بگو دیکچن اگر برابر بی بیوار باشی؟ چادر بی بی رو سرت بکرنم. آزت هم مثل بی بیوار بکرنم. عبادت هم مثل بی بی بی آر بکرنم. این بر زن و مرد حاک هستن. تو که میخوای که مثل پیغمبر و صحابه پیغمبر و دوستای خدا باش؟ تو خدا میشه که من بر شاید شمشنه رو دوستم وقت که آرستم تا بز وقت رقصید و رقصید و رقصید و رقصید. ساز است و عراب و ظلم و گناه است باز صوبه کی او را باز خوب تا سو گناه کردی باز صوبه رو ببرد سر شاید شمشری رو بازا جرد از اون بته شاید شمشری رو مگه افصال دستقاییم خالیست اگر نکردیم دو شمشری رو دربه نکردوی شما بزرها می میپراندم محبت که مثل شمشیر را شاید شمشیر این است اون سرحد دنیا آمد در, اینجا در افغانستان خاطر که دین اسلام نشر کنه خاطر که حکم خدا اینجا تطبیق شد و تو ضد حکم خدا و زده حکم فیرنبر خدا کار میکنه اینا در نام انسان محبت خدا معلوم میشه در لباس انسان محبت خدا معلوم میشه آمدیم محبت خدا در اختیار مجلس وقتی که ما یک مجلس را میگیریم یک مهمانی میگیریم و در این مهمانی ما یک فقیر توهین میشن یک کسی خاطر لباس کنش توهین میشن آیا خدا و پیغمبر خدا ملایکه های خدا در این مجلس به طرف مجلس نظر میکنه شر و طعام طعام الولیمتی یدعاله الاغنیا و یترک الفقران بدترین نان آروسی است که داماد خیلی نان را تیار و یا او اغنیا خبر میشن بردم پول دار و فقرا دو اون جه خبر نمیشن اینال وقتا که ما یک مجلس میکنیم به او مجلس ما ساز است به او مجلس ما سازنده است سازنده نداکننده شیطان است معصن نداکننده رحمان او میگه حیه علی السلام حیه علی السلام و این تمام روز دعوت میکنه مردم ها به گناه و به مسیحیت خدا اینه وقتی تو دا که دا تو در مجلست این این که کار شیطان میکنن به وجود تو در مجلست اونا رو دعوت میکنی اینه در اون مجلس تو باز ملایکی خدا اشتراک نمیکنه. نگه یک روز یک کسی بود که حضرت عبق س بدغی میکرد دعو میزد دشنام میداد حضرت اباک صدق آرام استاد بود پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگفت تبسم میکرد به اخره میگه ابوبکر صدیق حسابش به خنجر افسلش گیر تا شد ده جو از نفر یک کلمه گفت که خود تا متل است میگه پیغمبر سم اصحابش خراب شد دشنوش تو شد رفت مجلس را میگه از گفت که رسول خدا اون نفر که وقتی ما را بعد میگفت همه چیز میگفت و قرار تبسم میکدی. آلی که او مردتا من یک امه قدر جواب را دشم بسیار سادگی گفتم. دشنام را از اون مجلس برامدی؟ میگه رسول خدا و برش گفت که وقتی که اون تا را بعد میگفت دشنام میداد. ملائکای خداوند او را سر خودش پس جوابش هم میگفتن که لعنت خدا سر خوده و خدا سر خوده وقتی که تو جواب گفتی شیطان آمدی جمعایت ها رفتن به اون مجلس که شیطان باشه باز من استاد نمیشم اینال در مجلس و در اول که آدم میمانی میکنه در اول لیست خود خدا و پیغمبر خدا و صحابه کرامه یاد داشت بگیره که این مجلس من که من مردم ما را خواستیم با این نان را تیار میکنم آیا در این مجلس ما ملایکای رحمت خداوند خواهد آمدن؟ آیا از این مجلس ما رسول خدا راضی خاط بود؟ اگر اونا راضی بودن باز درست از این مجلس تو مجلس خداست. اگر نبود مجلس تو مجلس است. باید از این مجلس اشنا بکنی و خدا دور بسازیم محبت خدا ولی مجلسه که اینجا دوستهای خدا نباشند، دشمنهای خداوند باشن و اوج شیطان زیاد نقش داشته باشن باز او مجلس معلوم میشه که اینجا اینمین نفر که ای مجلس جور کرده ای با خدا و پیغمبر خدا چیز نداره محبت خدا در اختیار دوستان اینوال وقتی که انسان از چی شناخته میشه از دوست شناخته میشه دوست کیس فلانی بہن ولت اگر تو شراب نمی نہیں بودی از شراب خور چرا میشستی اگر تو زناکار نمی بودی که از زناکار چرا دوستی میکردی اگر تو بد اخلاق نہیں بودی که از دوست بد اخلاق چرا دوستی میکردی این اختیار دوست انسان انسان مسلمان چی میکنه کسره دوست خود اختیار میکنه که او دوست خداست ارتباطش با کی زیاد باشه با خداوند از این خاطر ای میگه، چون ای با خدا ارتباط داره من این دوست خود میگیرم که د مجلس شیشته شیشته چه میشه گپ خدا و گپ پیغمبر خدا و گپ دین بشنوم از دوستان محبت خدا در اختیار همسر نفر جوان است میخواد ازدواج بکنه با خدا محبت داره کوشش بکنه از فامیل بگیره که او فامیل با خدا ارتباط داره با پیغمبر خدا ارتباط داره با دین ارتباط داره پیغمبر سنن گفتن که حل طول ل شما ازدواج میکن به خاطر چهار سبب لمالها به خاطر مالش ولی حسبها به خاطر حسب و نسبش ولی جمالها به خاطر زیباییش ولی دینها به خاطر دینش بر دین ایست که با کسی ازدواج بکنی که او متدین است برای بچیت کس رو بگیری که او متدین است خودت اگر جوان استی اختیار کسر رو بکنی که متدین است و با خدا ارتباط داره اونو اختیار زن با دیانت مانا عزیز که تو خدا رو دوست داری از او خاطر زنی که به خدا دوستی داره او رو ارتباط میگیری و او را برکاهت میگیری. اما اگر یک نفر میخواه که یک انسانو گمراه طور بگیره باز پسا نگه که من خدا رو دوست دارم. اون خدا رو دوست می داشتید می که یک فامیل خشی می که باز در مجلس تو وقتی که حکم خدا رو تطبیق می کردی می این مجلسم ساز نباشه ده این مجلسم دول نباشه ده این مجلسم گناه نباشه باز اون مخالفت نمیکرد باز اون مخالفت نمیکرد، کرد. مفصریس برادر یا تو کار نمی کنی که ده خدا و بر خدا خوش میشه، من هم دوست خدا هستم. خب اصلا می اینی محبت خدا در سخن گفتن انسان وقتی که با خدا دوستی داشته باشه همیشه در زبانش گپ از چی از از دوستش است که خدا را دونزداره امیشه نام خدا در زبانش است و خدا میگه انسان در روز قیامت در هر ساعت عمر خود که کلمه لا اله را نخونده باشه و درود بالای پیغمبر سلام نفرست باشه در روز قیامت میگه او چی میشه حسرت و ندامت میکنه که خدا کاش که اینمی سات در عمر منمی بود بسیار ساعت منحوس بوده در زندگی من که من به خدا گفتنم ایت از این خاطر انسان در, ای در, در سخن گفتن خود کوشش بکنه که همیشه نام خدا، نام پیغمبر خدا، سخنهایی در زبانش باشه که اونجا او را به دین و به ذکر و به عبادت چیز کنه محبت خدا در مجلس آروسی و شینی خوری یک رواج است که در دین اسلام نیست مجلس مجلس خوری. در اسلام چه است؟ فقط خواستگاری است و بال از خواستگاری آروسی است و اورسیان به شکلی است که پدر حق نداره که از او دختر خیل دختر خیل پدرش دختر، پدر دختر یا برادر حق نداره که تویانه بگیرد چون تویانه مطلقاً حرام است در شریعت فقط مهر است چی از مهر مهری است که در وادی نکاه اونمو و داماد برای عروس بهسر تعیین میکنه و باز اونمو حق بر اینی عروس میده درده زو تسلیم میکنن اما پیش از آروسی که یک ماه پیش و دو ماه پیش و تویانه را تا میکنن و با پدر فدر دختر یا برادر دختر یا کاکای دختر او را در جیب خود میپردن باز از پیسی هجو هج میره. خدا هجو را قبول نمیکنه. از پیسی حرام مثل رشوت وارست مثل دوزی وارست و حتی بسیاری علما میگن بگن که اگر از طرف خیل خبر شده شما دختر خیل غصب میکنه برای یک نفر میگه اگر چل سیر برنج برای میتی توی میتومد نمیتی توی نمیتومد چی که از غصب کرد؟ آیا خوردن نان غصب جاییز است؟ یک نفر چل سیر یک نفر بازور گفته از موتر تا چهار برنجش چه پایین کردن از او برنجش میخوری؟ نه رو باست بنامون برنج تویانه برنج ها ولیمه چی را میگن؟ در اسلام ولیمه هست ولیمه چی را میگن؟ که خود داماد بدل خود بازی که خدا برد باز خانه خود اگر دو تا گوسفند کشت اگر سه تا گوسفند کشت اگر چیز پخته کرد اون رو پخته میکنه نتونست نکت ایچ آرزخ حق نداره او را مجبور بسازدم آواررزخی رو اونو میگه با این شیر بههاش حاللو سمند وط تو بالا از شیرال از دو, دو, دو شیر باخوا میگیری یا مثلا آروسی با دو صد نفر از طرف ما در اوتل خبر کنی چرا از طرف دو صد نفر خبر کنن؟ اگر نمی نمی‌کردیم ما بر دختر نمیدم حت تو خالیفه امر خدا و پیغمبر کردی بنا ان خوری و آروسی تو دهی حاکم خدا و دوستی با خدا و پیغمبر خدا نشد او از دشمنی خدا با خدا و پیغمبر رو خدا از یک طرف اعلان کرد و این داماد خیلی کس وقتی که آروسی را میگیرم به لست خود اگر در اول لیستش نام خدا و نام پیغمبر خدا و نام فرشته های خدا باشه باز اون مجلس که سازنده باشه به اون مجلس که دول باشه در اون مجلس که رقص باشه. باشه آیا ملکه های رحمت در اون مجلس اشراک میکنه؟ آیا رحمت خدا در اون مجلس نازل میشه؟ آیا باز یک خدای ما تو داشتم؟ یکی که دوز داشته در چیم نخوری وارسید؟ کاری که دیکه نبا اونجه ملائک رحمت اشراق میکنم بلکه کل کسایی که در مجلس تو بود کل شیطانا بود کل شیطان اشراق کرده بود از این اول تا با آخر از این خاطر انسان مسلمان حتی محبت خدا دعوادی آروسی کردند در ورده مجلس خود ثابت میکنه که خدا اینه ما آروسی کردم لکن آروسی نه آروسی نگرفتم که دوج دوستای خدا وجود داشته باشن و دشمنای خدا و پیغمبر خدا نباشه از این خاطر ثابت میکنه چی میگه مجلس راه میگیره سیز مابندم میتا سایز که بر مردم احترام میکنه، لیکن بر مردم عمر بخش نہیں میکنہ 20000 بے خود عن شما در روز قیامت از نعمتهایتان محاسبه میشین پیسه نعمت است اما اینمی پیسه غضب خدا میگرده. در صورتی که اینمی نعمت غیر مشروع استعمال شون 30000 بر تو بر سازنده میدی؟ سی هزار مرتبه در قلوس را خطا میخوریده در بین آتش دوزه تو سی هزار را برای گریبتی برای سازنده دادی سی هزار را پیتون میشد که مثلا سی برژی آرد با سی خطقیر میشد و سی فامیل فقیر سی برژی آرد میشد که تا <تصفح> یک فای مکمل اونا آرد میخوردن یک دشمنی با خدا کردی زده کار خدا کار کردیم. این در آرسی بود از شنی خوری بگر محبت خدا در تربی خدا را دوست داری؟ خدا دوستت است؟ بله دوست هستم است. آیا به اولادت خدا را معرفی کردی؟ به اولادت پیغمبر خدا را معرفی کردی؟ خدا هم میگه مرا دوست داشتی؟ بله چه قسم دوست داشتی؟ اولادت مراش نمیشناخت. لا واساتتش مرا نمیشناخت. پیغمبر منم اشناخت، صحابه را نمیشناخت. اینا انتو تو دوستیت غلط از دروغ بگی. هرال انسان کوشش میکنه که به اولاد خود به شکل از اشکال کوشش بکنه به اولاد خود، بر خانم خود، بر خواهر خود، بر مادر خود، بر دوست خود، بر کل چی کنه؟ خدا را بشناسه. یهو بر در خود دوست ما ذات خداوند متعال جل جلاله است. خداوند اینی صفات داره. خداوند از این خوش میاد بر دو معرفیش کو. بر اولاد معرفیش از خرطری کی از این نام که سه روزه تفلت و روز اولش را گفتش الله اکبر رو گفت ببین الطفل که تولد میشه شیطان یک بچه میکنه چی چیغ میزنه تو واسه نمی تا سه روز دیگه تو بازل برش بکنه چیز کنه از حال گوشش گوشش بیدم روز اول تاکون متفل از روز اول نام خداوند بشنه و همیشه برش خدا رو بیان کنی و خدا رو برش معرفی کنی تاکو با خداوند ارتباطش شدن محبت خدا در ارتباط با مردم کات کات که تو ارتباط میگیری آیا تو با خدا دوستی و محبت داری آ دارم وقتی که داری با هر کسی که ارتباط میگیری مسئولیت داری و مقابل خداوند که اون نفر را با خداوند ارتباط بدی از طریق دی اسلامی میدانی از طریق گپ خوب میدانی از طریق کسات اسلامی میدانی از طریق کتاب میدانی از هر طریق میشه اون نفرا با خداوند معرفیش میکنی و بر راه دید و حقیقتا اینکه وقتی که دیدی او دشمن خداست و کار خدا را نمیکنه و مجلس بدرک میگه میگه در مجلس که اونجا مسخرگی میشه برای خدا و پیغمبر خدا تو مجلس نشینید اگه ششین شما مثل ازوار من در آمین کمون کردم، فالیو غیره و بیادی. وقتی که این فریا کار بعد دید، باید رو بعد با دسخه دو کار بعد ادرکنا. ایج ایمان صادفیه دست. فا ایمانی است و هم گناه می‌دانم. فا به لسانی به زبانی بگو، ایج پنج آفیصد ایمان است. فا ایمانی است، فا به قلبی قلب خود امو کار بد بد ببینه. باز اینجا اینجا ده فیصد ایمان داره. و از که عدافل ایمان عدافل ایمان چیزی که 5% و 10% ایمان داشته باشه خب یک نفر یک کار بده میبینه یک گمراهی رو میبینه و او رو تشویق میکنه و یا خودش سبب ازی گمراهی میشه چقدر ایمان داره؟ کار بده نه با دست خود درکه نه با زبان خود رو منع کرد و نه با قلب خود رو بده بلکه او رو خودش رفت سازنده داره گرفته آورد با فیسان برشان حس عطا محبت خداوند در اطلاع. محبت خدا در اشراق و مجلس دیدی که یک مجلسی که در اونجا یاد خداست یاد پیغمبر خداست یاد دین است یاد قرآن میشه به اون مجلس اشراق میکنه در صورتی که اون مجلس ضد خدا خداوند ضد حکمت پیغمبر خداست آدم مسلمان در اون مجلس اشراق نمیکنه حالا تو که وی اگر تو خفه میشی خفه شو وقتی که ما بیان در تو خدا خفه میشه خدا را خفه <تصفح> بسازم یا تره؟ <تصفح> <تصفح> خفش خفش خفش. حال انسان و خوب و خوبهсне که خداوند متعال جل جلاله جل انسان خفه بسازه. و دیگه چی هست؟ محبت خداوند جل جلاله در رفتن با خانه خدا. خداوند پرسان میکنه که خوب بنده من، خانه فلانی دوست رفتی، خانه خسرت رفتی، خانه فلانی رفتی، خانه فلانی دو سه تا کجا بود رفتی؟ با خانه ما در بین خانه ما و بین خانه شما چی قف اصلا بود؟ یک ساعت متر هم نبود ولی تو تو را گفتم پنج مرد کنم علی الصلا بین به نماز حی علی الفلا بین به جای بستگاری تو تا خانه من آمدی یک وقت دو وقت سه وقت چهار وقت پنج وقت چرا خانم مثل تو حق ندوش از دقل پنج دقیق کمی آمدی؟ و شیطان تو دو دوزاد قسم بونه رو میپالته که والا اگر اگر خدا بری داره دو سرت حمله میکنه والا اگر دوست بخواد تو را حمله بکنه یا کس بخواد که داره چیز کنه به هر شکل میپشه دراز تخ تخ میکنه تو چند چند پیش پیشونیت پیش منو میبالا شده موتر میبرید اون تا از مقدار خانیت نمیبره اما شیطان در دل انسان اساسا میپد که اگر این کردی بوس این تو میشه باش که این چیز کنه از این خاطر خداوند متعال میگه ولات طبیع خود و خطوات شیطان تو که مسلمان هستی اگر مرگ است خوب. از طرف خداست محقی خداوند است مومید خداوند است چیزی که در تقدیر من خداوند نشته کرده و تغییر نمیکنه. اگر تغییر من نوشته باشه که باید من برونم بندی شوم من را شوم شدم از بین برم من کشته شوم که در راه خداوند در وزید رفتن کشته شدم چه خوب شاید میشی باید که در رای خدا رفتن به طرف مرزیت یه کسی بکشید خوب است ای ای ای ای ای ای ای ای از این خاطر شیطان در دل انسان یک نبو وسوسه ها را میپرده که انسان مسلمان باید این وسوسه یک پای خدا کاملا دول کنن و به طرف خداوند و ارتباط خدا با خداوند متعال جل جلو قائم بکنن به این خاطر ما شما مسئولیت ما خلاصه کل از سی بود که انسان مسلمان کوشش بکنه که از خود سوال بکنه که من با خداوند چقدر دارم. و پیش خود دلیل نیشه باشه که در روز قیامت بگو خدایم من با تو محبت داشتم از این خاطر نام اولاد خدا اینی نامموند با رسول خدا صلی الله محبت داشتم نام اولاد خدا قسم ماندم خدایا با تو محبت داشتم اینی میمانی و اینی قسم جور کردم خدایا با تو محبت داشتم دوست ما فلانی نفر رو اختیار کردم با خدایا با تو محبت داشتم به عروسی اینی قسم برنامه رو گرفتم اینی قسم دوستای خدا را خبر کردم و به این شکل انسان مسلمان می که چی کنه دوستی خودا با خداوند متعال جل جلو ثابت کنه گپ های خلاص شد اگر شما سوال چیز داشته باشین مشه سوال تانه بگوین ما غریزو درس ختم میکنیم من سوال در باره میشوا گفتین و یه سوال سوری من مثال اینه معلومات نداره من خودم نه معطل صدقایت خان که عروسی امراه مثال زنای اهل یهود و نصارا در صورت که بامو کتاب شد تحریف نشده باشه یعنی دمید سوال ندهی بارد کنید در اسلام چی بکنید با یه زنای که غیر مسلمان باشه امتباهش کردن جایز است نیست یا نیست یا نیست یا دوست مهمت سواله در قسمت یهود و نصارا اینجا نظر با احکامی که علماء گفتن والله و علم اونا میگن که جایز است که یک مسلمان به همراه زن یهودی و یا زن که نصرانی باشه یه باشه به شرطی که به ما دین خود قایم باشه به با همراه ازدواج بکنه انګر په دغه کشور خارجی زندگی میکرم او چې می, می خوهم رايک مسرانی زړه چیز کنه استفایش وکنه یعنی استفایش از جایز است با شرطی که او د مذهب خود باشه حال مشکل بسیار سره به کشورهای غربی او زنای یهودی و نصرانی سیکوبر شدند بی شدن. دین شدند ایدت خص دین یو دیگر په خود از د مذهب خودم کافر شد اما اگر با مذهب خود باشه باز علماء میگن جایز است ولی باز وقته که من گپای یک وقت هست شیخ قرزایی از بعض علما را شنیدم باز اونا که تا شما اگر در خارج هم بودین تا کوشش میکنین با زن مسلمان ازدواج بکنین بخاطر که هر قسم که نشه مادر در اولاد تاثیر میکنن با تو نشه که یک وقت مادرشونو و اولادک سرش شاد چیز کرده باشه بیبینی که خودت مسلمان است یا اولادتی باشه بیدین و ایز. از اون خاطر میگه تا وقتی که بسیار مجبور نشدین باید سری بله، تاکی که دیما تو هیچ کتابی رو ازشی نکرد. دخترت خبرش جداس قسمت اهل کتاب. سبحان ربیگار بلال زه مایسیفول اللهم الله بالقلوبنا بالقرآن العظیم و اخلاقنا بالقرآن العظیم و دخنا الجنة بالقرآن العظیم و نجنا مناری بالقرآن العظیم. خدایی در این مجلس که ما کردیم هدف ما صرف این بود که چهار کلمه ای از دین و از ذکر خداوند و از یاد خدا و احکام دین بیان شوند. خدایی ببرکت دیم ای مجلس مبارک ما را هم در جبلی من بنده های صالح و حساب بکنم خدایی نشست را و سخنای ما و چی داره کردیم نیت ما بودم و به خاطر رضایت خودت ششتیم خدایی إلي بذر قبول بك رضان الله وامار أزار دوزه وازار زار جهنم وازار قيامات خبائته در ورحمة الله الله اللهم اينا نعوذ بك من عذب القبر ونعوذ بك من الله النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدرقال ونعوذ بك من فتنة المحياء والممار لا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا, لا إله إلا الله محمد رسول